این المعصومین شد که در کلمات متحقه از ما یه در مباحث اصولی رو با عنوان حفظ محضر کردن مسائل حفظ در اصول که از کردن این نه سابقه نداشته در مسائلی که در این جد مطرح شده بعد از تقسیم به اصطلاح بعد به این که یا طریقی یا موضوعی و در قطع طریقی باز بحث دیگه و مسئل که در قطع طریق موضوعی که آیا امارات یا اصول همگی یا از اصول قایم مقام قطع میشن یا نمیشن این توضیحاتشی ای گذشت و بیان مطلب شد البته اون مطلب نهایی که مربوط بود به این بخش اخیر رو از کردیم بعد ارزمی کنیم فعلا یک مقداریشون در کساب تحضیح اصولی پر باست راجع به این مسئله موضعی دادن این مطلب رو این چند زیر قطع تاریخی آوردهند و مطرح شدن بعدن در قطع موضوعی و ایشون استعمالات این نخوندیم نخوندید قبلیتون سابقا در بحث موضوعی احتمالاتی که در قطع موضوعی دادن بیش از اون دو احتمال متعارف و معروفی یا آن خودشون مراجعه برن در بیام اصول در بحث امارات در صفحه صدا از این جلد دو پیشون متعرض شدن از طور که ایشان برخلاف متعارف و معروف یک بحث در مقام صبود کردن ایکی فهم آن اثبات از طور که تقسیم یعنی ترز بحث مقام سبوت چندان به نظر واضح نمیاد در این مسائل جای بحث سبوت نیست و هم که مثلا صاحب کپایی یا دیگران که میگن نمیشه بیگه جعل واحد دو کار رو انجام بده مقام مقام اصباد از از از نه اینکه حالا امکان سبوتیش با شطن حتی دلیل میشه و از از دلیل مقام اصباد علایه حاله هم ایشان وارد یک بحث ثبوتی شدن که حالا ما بحث ثبوتی رو نخوندیم خیلی به نظر روشن نمیاد و در صفحه 190 تا صفحه 130 متعرض مقام اثبات شدن گفتیم یعنی مطلب ایشان رو بخونیم و بعد از توضیح مطلب ایشان وارد اون تحلیل نهایی مسئله ان شاء الله از بشیم در کلمات از به مفصل متعرض شدن در بحث امارات در بخش اصول تنقیه و اصول در این جامعه مناسبتی حتی ادهشون نسبت اصول بردیاب و برد امارات نسبت که ما این توضیحاتش رو ارز کردیم دیگه میخواد تکرار بکنیم و ایشان مخصوصا علماء ما در بخش اماراتش بیشتر آمازن روی مبانی خودشون رو تو امارات بین کردن که دیروز من توضیح دادن دیگه دیگه بیشتر بشه. ایشون ظاهرا، یک اشکالی میخوان به کل بحث بکنن که این نحوه بحث در کلمات اصحاب خیلی روشن نیست این عبارتی شان دیدوز خوندیم دو مرتبه یه مقدارش برای انتجام بحث که روشن بشیم ان امارات متداغله فی ای بینا مم مستقر علیه العمل و اندال اغلا بلا غمز احد من هم فی واحد من هم روشن نیست حالا این چه یکی مثلا خبر واحدی از امارات مهمه ایشون میگن جنا نداره و خودش مسئله معروف زیادی خبر قبول ندارن بزرگان بغداد ما خبر واحد قبول نداشتن اینی که چون میگم به آخر روشن نیست ضرورت تتبع حیات المجتمع علل امر به معلوم نیست یعنی چون ایشون از امارات غیر خطی بله در مسقط اگر نما باشه عمل به شنا شروع است اختلال نظام لازم میاد اما قیلش روشن نیست و اون نکاتی هم که داره همش یک نکته نیست مثلا فرض کنید خبر واحد حجته یک نکته هست. اگر قول قاضی حجته نکته دیگه‌یه درسته یکی باشه درسته اگر قول قاضی رو حجت ننده و جامعه وند می‌کنه و هم اختلاف پیدا میکنن قاضی هم تو حکم می‌کنه شاذج فرض مثلا قاضی این لباس این عبا مال این آغاز نگه نه آغاز برای رسو بروید این قضاوات قبول ندارن و باز نمایت رو قاضی دو و باز بگه ندارن خب اون مال رو جامعه به هم اما اینا همه اعمالات یک نحره واحد نیستن یک سنخ واحدی نیستن ولی انسان المدنی یرا انال بنا علا تخصیل لعن تلحباد سال وقای الیومیه یوج و اختلال نظام المدنی مدینه یا مدنیه راست اجمالا هست اما کل امارات نه این حالا یکی یکی مثلا کود رها ها رها اون سنگ آسیا به نیست آسیا نمیشه اقید گرام رکود گرام فرم یر در منظر عرف یمین و انشماله وقف علا مصالح الامور و مفاسده ها عمل عمله به قول سقه این عمل به قابل سهر روشن نیست که اگر تحب و توش نباشه نظام جامعه به هم میخواه و به زواهر کلام الملغال تفهیم و رایی ما غیره ها نوشته مورد غیره همه بله زواهر کلام هم اینطوره من همیشه ارز کردن اگر ما در گجیت زواهر شک کنیم مثل کسان ایسه در اصل وجود در فلسفه شکلیم اصلاً فلسفه به هم میریزه انکار و گجیت کلام مثل این کار بودی در کلی خزدراتی بسید به بس سفزته منتقی میشه جا نبی الاسلام صلی اللہ علیه و آله و عظهر احکامن و اوضح امورن ولیکن معزاله که کله عمل به امارات من انبو احدون احد الاغلائین تو دیروز توزیح ارز کردن هلذین یدبرون دو یودبرون یدبرون یدیرون هم میشه اداره مجتمع افتران یدیرون باشه حیات المجتمع من دون انیو اصل اصلا و یقیم امادن چرا مواردی هم داریم در موضوع چه در بینش. او یهدست امارتن او یزید شرکن این هم میشه که مثلا فقط یک مقدار چیزی اغلاییت باشه شارک همون زیاد بخونه مثلا میگن قاعده تجاوز اغلایی هست با دیترا شاردش تصرفاتی کرده او یوتمم کشت امارتن این اشاره به مرموم نایینیست که ایشون قائلن که حجیت امارال از باب کشف الان ایشون فرمون من دون و احساس هستن چرا اهل سنن ازده زیادیشون قالی به حجیت خبر عدل به نه خبر سقه خبر عدل حجیت تعبودی خبر عدل اگه باشه شریعه دیگه که اغلایی چون اغلا از قول سقه حسابی که دارن اما این که فقط عادل باشه زواهر دیگه رو مراعت بکنه این تعبده الاغی رضا لکنه لعبارات او یجال تریغیتن لباه من امارات اشاره به مبدع مرمونه نیست که دیود ارز کردن الاغی رضا لکنه لعبارات لطی تراها متضافه کلمات او انما به کلی این بحثایی که در کلمات هست ایشون اشکال دارن و به جمله لم یکنه عمل نبی و, و خلافا من بعده ظاهرم واضح کنه همه علیه مستنم اون خلفا که عرضش وجود ندار علل امارا الا جریان علی مسلک المستقر اندر اغلا بلا تأسیس امارت او تصمیم کشف ها او جعل و جیت و طریقیت لباهدت منه ها بل فی روایات خبر السقه شواهد واضحه علی تسل و تسلیم العمل به خبر السقه و لم يكن القرذ علم من السؤال الا العلم بالصغره اشاره است این ان شاء میاد در درس حجره خبر سهره البته مردم نایمی هم به همین واسه تمسک کردن ایشون تمسک کردن که گاهی اوقات با ما در روایات داریم که میگه فلانی سره هست یانه این روایت سندش معتبره در 12000 ارزش میکنه اف این مصوب نعر الرحمن سغتو آخو با انه عالم آلم دینی و قال علی السلام نه میفهمن از این عبارت هم نایی این بیشان دیگر هم گفتن استاس بیدو جور با ندارم. از این عبارت معلوم میشه که اصل عمل به خبر سقه و غلائی این نمل کلام در صغرات لعص مطلب واضح این چی یو سؤالی آخو با انه هم آلم دینی و فرانه چه قبول داره که به قول سقه عمل بشه این نظر کلام در یک نظر رحمانه که آیا سغه هست یا سغه اشاره ایشان به اون مبلده علا سسلم العمل خبر سغه ولن یکون الغرز من از سؤال اللا العلم به صغرا علاقه انشاءالله من الان واردین این میخوام نمیخون بشن جاشن اینجا نیست لیکن از خواهد شد در محل خودش همین روایتی که آیا به قول خودشون شوالد واضحه گرفت همین روایتی اینا جزو شواهد واضحه گرفتن این روایته که به خبر رساله عمل وارد کرده. خیلی عجیبه خان ان شاء الله همین رو واسه دلالت نداره واسه این جواب ایشون جزو شواهد واضحه. ببین بحث حجت خبر سره این است که اگر یک انسان ثروه مطلبی رو نخر، هر چی می‌خواد باشه. مثلا یه بار رفتون توی عراق در حرم باز بود، یا در حرم بسته بود. یا مثلا قرآن دکان بسته بود، کتابخونه ایشون قرآن بسته بود. خبر رساله مراد اینه یعنی ما ترکیب آثار بدیم رو هر مطلب که ثقه نعمل میکنه این مورد از خبر ثقه این در سؤال این عبدالعزیز ابن مهتدی که از امام سؤال میکنه و کان خیر قومی رئی تو او. سؤالش اینه افیون و سبن از و رلمان ثقتون آخوز و همه ها معاله ندینی تراجعه این سؤال نجده معاله چارتوهای کلیه الاطار ال این که فاز امام فرمودن من رفتم خدمت امام فرمودن گوشت خربوش مثلا لحم و αρنب حرامه این که جزء معالمه دینیه اینا توجح نشه نه هر روایت واضحه بابا بخواجه از شواهد و ایشون نگن به شواهد واضحه جزء شواهد واضحه بر حجه خبره سره اینجا مراد اینه چون یونس بن و الرحمن هم بعضی از اشکالات کلامی برایشان وارد شده گفتن قاهر به جسم بوده جسمانی تسلیم بوده و همه اشکالات و قصولی بر ایشان بوده اشکال ایشان این بوده که مفتر اعمال بقیات می کرده. و یا مثلا ذهنش نزدیک به ذهنیت آمه است برخوردش باروهاد مثل اهل سنته مثل برخورد با کتاب و سنته مثلا ولذا ادهی زیادی از روایات رو ترح می کرده. این سر این که اهل قوم به خصوص باییون سر بردارمان بودن این بود سر مسئله این بود سر مسائل مسئله در مساقت نبوده ایش از این بزرگاه بزرگ بیش ترجع نگردن یونس اجل در بحث مساقت یونس مطرح نیم بحث ادالتیشان مطرح در به اسم صلاحی نه حاجی بحث ادالت و مساقتیشان نبوده نه آ خدا انه ها معاله نبینیم چون مستهنه به این که آراعش بروسیم نه نقل دروغ میگه آ خدا انه ها معاله نبینیم به بعد میگه خب هر تفسیر من نیسته یعنی کلیات یعنی این یک تفکری داره در حدیث در, در... م... میدونم یعنی این... میگه این این این چارچوب‌های فکریه صحیحه که منظورم شده چارچوب فکری بله این چارچوب فکری ولی نقل نعل نیستیه فایده داره نمیگیری ما از کتاب و سنن میگه واسه این در همین روایت دیگه داره که خود تو در یونس ما اشده این کار اهل حدیث همه قویان نارخندشه. ایشان متبر بود در این رواتزاره که با یونوس می رفتی. اون یک شرابیشی و کارش که باز کرد قطع شراب لباس ایشان سان و بلگردیم اون خونه بشوریم که مثل شراب متیست و قول توله او حاضشه اون ری هم بود اون روی این روایت یا ری یاس قائل به ری هستی ری بزارره مطر کنیم یونس نردرحمن متهمه به رعید قیاسه یونس نردرحمن متهمه به اینکه با قوله این به خبره به خبر عمل نمیکنه. روایات اهل بیس رو ترمی کنه این میگه سه اون آخو با انها معالم دینی یعنی این در فکرات سلیم معالم دینی که قوله خبر لحمر نبید که از دیرن اصلا در یونس نردرحمن صحبات دروغ گفتن راست گفتن بزردی بسی بگیم کلانی که میگه اضعایی اشتهاد میکنه این درسته اشتهاد نه لا اله سوال اینجا اینه چون قومی بوده و از میکنم شواهد داره حتی مرغوم کشی یه روایت رویت رویم میکنه از این قومی ها که محضرت مصدر جعبر از تشیر مثلا گفتن ابن الفائله مثلا. که بعد مرغوم کشی خودش تعلیق میزنه میگه بدید وضع قومی ها نستاد ویونوس خجار که حتی بر زبان امام معصوم گفتن که نسبت فجور به مادرش خیلی با من بیاد کاره که امام معصول نستجیر رو بلا از ویونوس رو بفنه این تغییر کشیه بگه بلگرم در قومی ها این افضاد از به محتلی قومیه و خیل قومی یعنی رعی او این قوم خب می میگه آقا ایشان سگه که من چارچوب ها و معالمدیرا بس یعنی فکرش خوبه اصولش خوبه کلامی دروسته متهم به تکفیر نیست متهم به رأی نیست این معالمدی یعنی این نه, نه. از که غیر تو نادر که اگه پیش امام بوده امام می‌دونه دیگه ایشان دیگه از درس این حرفا این ذهنیت حجیت خبرو فکر کلاماتی رو آورده هر هرچه کلمه سپردن چه عقدی دادن خیال که مورد اعتراضه این حجیت خبرو این که یونس نهاری بکنه مثلا شراب نجسه این روز معالم دیم نیست این کاملا واضح مراد سه قطور آنخواد و آنه حقوق به قطوری این چی فهمیدنی کلباتو معالم دیم طبعا این مسئله که شما میگن این شده میاد آیه نایگم نای نای نا هم, هم مسئله برموده که بله اصل حسید حسید حسید حسید بوده بحث در سهره بوده استادم دیگر ها اینجام دارم و بحثم خوندم این توج بحث از آخدا انهما عالم دینی بحث سر مسئله خبرشی بحث در سر چارچوب های تفکر کلامی و اصولی چطه آیا این مقتب کلامیش درسته؟ اهل احرابیته؟ مبانی و اصولیش درسته؟ صحیحه؟ این مبانی و درسته؟ من میتونم در این حساب باز کنم؟ و اینم سرشیم بود در جبره قوم ایشان بدنام بود یکی از بدنامی های ایشان مثلا چی بود این بود که ایشان رد اخواب میکنه مقاله روزی ما بلایت خوبی بود هر که از روایت رد میکنه به یونس یونوس میگه من, من رد نمیکنم. من اذهل بیاد روال از اصحاب باقر حتی در کوفه نوشتن چرا تو به اصحاب صادق ساده می‌کنی بعد واظن خدمت حضرت رضا که ابا ان یکون اکثرها من احادیث علی حضرت رضا فرمود دو گفت دو گفت من نیست که هزار رضا فرمود این تفکر توی قم به چون خمیاب بلا اشکال در دایره عمل به واجب قطعاً اوصا از یونسن الان به مثال یکی از روایات کلیدی و بسیار مهم ما در باب حیض و استحاضه روایت مرسله طویله یونس دو صفحه صفحه طولانی پیغمبر اکرم یعنی از امام صادق نعمی که پیغمبر سه سنت در باب مستحاضه گذاشتن یک دو سه شهر حالا گفتم واسه شربا واسه بگیم چند روز طول می کشه تو بحث در بحث استحاضه خب چه میکنه و بعد نتیجه میکنه همین مطلب بعینه در فقه حنبلی موجوده همین مطلب به اینه <تصفيق> بعینه به خدا موجود موجوده همان سدس مکری هم حالا نره احساس میکنه است چیو گولا یه یک بسدی رو کیو دوست البته یونس میگه ان غیر وارد تن علی عبدالله حالا یک مشکل جدیه که اوقیه میفهمه وا اینکه او خوب مرسل قبول نمیکنه میگه چون گفته غیر وارد قبول تازه این مطلبی که یونس گفته در هیچ هیچ تصریفی در هیچ رواتونه ازدهی از, از مساله باشم در که رو یعنی ایش رواست ما نگمه حالا ایش موزه ام غیر واحده یعنی چندین نفره چندین نفره کچه هسته ما اینشان در اونجا اگه در بحث سالت همه توضیح میدید اصولا من ارز کردم ببینید در همین مناسبات چون نزدیکه بیل فسر بودی. فسریه در رواست فسریه قالبا چهار تا گندم و جون زمین و کشمشو اینها بزن بعضی هم پشت اما الان می شما میرون تغییر به قوتقالب نیستون دیگر که ما رو حالی روحانی اصطور در جایشون این تغییر قوتقالب تقدر روشی اون نصف نداره در درنباه دیگه مثلاقه این شون بداشته یعنی این یک تفکر اصولی در پر فرده باره با یاد داره این قوتقالب نه یکی که اصلا تنباه بده که این از اقتصاد ها یونسر نردرحمنه آن مثل زمان ما دیگه این بحث ها ریشهی کار نیشه اما زمان قومیان مثل ایناللهی اینا ریشهی ای کار میکردن میادن میراس یونسر نردرحمن و باره باستگیم مقارنه میکردن و در قوم به خصوص یونسر نرده هم بدنام بود ارز کردن که شما تصور این این آسان نیست نیسته من خدا کذار بکنم از نوان موسر میزن بکنم که راجعا مثلا بیونصراً تعبیر لش رو به ما هم برده. دیگه خود کشی هم به کار برده میگه خودی کشیان که بیونده به اصطلاح بی این معنا مثلا حد شناسه چیزی باشه و نقاد روایات باشه این نیست کشیه مسافت اخلاقی مسلک کار اینجا است دیگه داد کشی در که چی این ها چقدر با یونس بده که حتی از زبان ما معصوم در اومده که پوش ناموسی میونده مادرش مرتضی ابن طویله گفت او شو حسابو حد بکنی که موزن جعفر بعد در وقتی که از از از مدینه میوردن باز از بغداد در زندان یکی از اون افراد میگرفتن پلیس منزل فرانی باز بود پوشتم نماز مغرب خوند بعد این بعد نماز حجی الله تعالی ابن الفارض انه اقصد علی اصحابش این شیها رو گمراه کرده گفت آقا چی میگی قوموزه در بغداد خب این کار به کجا رسید دست این آقا میگه آقا بیخود شما هر حال تو قم دروردین عبدالعظیم المحتدی و کان خیلی قمی رفیقو ام در من خودم خدمت هزه رو داره سیده دار. هزه خدمت همه ازید من هزه خدا همه سقتون آخو به معالم دینی نه خود حضرت من این مورد اعتماد ما نه سقتون در نقضی که شعر یونوسی در تفصیل سیده معالم دین شما واقعا وقتی نگه معالم دینه اون کلیات فکرش اون روایت که نه است که 11 اینجا اونجا کلی شبهه یک قصه تقیه خارجی زنیم نه اینکه فرق بین خونه بیکار یا خون هجزه اسرار نه بابا عزیز من این که نمیشه که به فرق بین این که خونه هیزه با خونه بکارش تو تشطیبی میشه سرون من اصلا الله این به خاطر تقییه از میگه من در م... م... اونجا در... اما اصلا معلوم قصه مان شیعه بوده این قصه که در کوفه واقع شده این قصه توی کوفه واقع شده رفتم به ابو حنیفه ابو حنیفه یک چیزی گفته بعد رفتم میگه من خودم رفتم بیش حضر نگفته اونا از من خواستن. شاد حضرت گفتن اگر تو این مطلب نعمل بخونید بری کوفه اینا میفرم که مثلا تو شیعه هستی با من رابطه پیدا کردید چون حضرت تحت نظر بودن من این وقتی هم عرض کردم خدمت قیلت چه کار میکنم وقتی این محراشیشون دیگه چکار به شما به این ظهورات رو بادیشه بگیرید نه به ابو حنیسون من درست بخلابش ابو وقتا معلوم میشه اون کسی که قسط درش اتفاق داره معروض هست شیعه باشه اون کسی که سوال درش واقعه شده آمده امام بخواد از کلم بدون شروعی موسن جفر فشار حتی از امام صادقی اینها بیشتر بود من من دونم تازیگی هم این حضرت تازیگی دیدم چون موگاهی نور کرده در کتاب مقاتل طالبین عبول فرز اسفانی که عبول فرز رفته زهن زیدی باشه اگه ایشون که مصطفی جعفر در جریان محمد نزدکی خروج کرد جا مسلحانه نا کردن اما شهید نشدند به استناد من فکر نمی‌کنم شده اینو قبول نذشه امام راه محمد دو تا از فرزندان حضرت میگه شرکت در جریان با محمد نزدکی فکر می‌کنم از دروغای بوده که زدیه دروزن به هر حال بدون شک زندگی مصطفی جعفر به لحاظ سیاسی به شدت تحت کنترل نیروهای زندادهای شورانی ایشان این قضیه اصلاً این کارش کنه حالا اگر واقعا ایشون داده که عملیات مسلمانه رسمن علیه منصور واده جمعیت خبیلی مشکلش بیشتر میشه نه امامت حضرت مفرهه وقتی اون پسر برده ایشون میگه خلیفتان یوش بالا حمل خراب چرا یه دومیش به محاروم میگه, دومش میگه؟, میگه دومش برای شما پول میارن برای اونم پول میارن این سر الله نه این که راجعه به فرقه این خونه هزور کازی خب سر الله همیشه هم و واضح یعنی بحث کلام آدم با قراره کاملن رو میبرمید نیست که میذار نبوده بحثگاه اینوه صادق یا ساده نیست سری در نقلت بحث مزرح نبوده, بزرح نبوده. یعنی شما به الان یک طریقی که به عنوان مرجع مثلا شما ببینید بحث در سف... وثاقت و صداقت بحث میکنید درست میگید میکن. شما بحث میکنید شما یا میکن درست مبانی اشتادی تقی بحث وثاقت که بحث که به کنن کلمه من میشم که شما توجیه از این کلمه او و انها ما, آلمه، ما آلمه <متصفيق> از کنم خدمتون ببینید ما از دیوناس چون میگم بررسی نشده مثلا الان فتوای اصحاب مشهور اصحاب فصل باب زنا دو چند قسمی کنن یا مثلا ازدفاق کرده دوخ... زفاف نکرده چه کرده جوان پیره فلا یون صدر نبدالرحمن اعتقادش این بود که این تقسیمات همه بیهوده است یا محسن یا غیر محسن الان هم نیست شاد مجموعه روایتی اون رو در باب هده زمه شد ده ها روایت باشه یعنی بیش از ده روایتی یعنی اگر ما بخوایم مج... الان مثلا این مسئله زکازه ببینید این یک بحث کبروی بوده بحث صغرا نبوده بحث این بوده که اینا میگفتن یونوس یک تعم خاصی داره مطلب نقد میکنه اما فرس میگه خوت قاله حالا در روازو دیگه همه مصداق داره ایجور میگه خوت قاله پس یک تفکر در کل فقه داره در اصول داره در کلام داره این یک تفکر خاصی داره این تفکر رو مخصوصاً قمیه روی حساسی ده حاضر نبوده زیر واری این روز ده یا حاله این توضیح رو در محل خودش هم خواهم گفت بله بله خب, فقیه، فقیه، فقیه، نه؟ خب، خیلی فرقی که وقتی حالا نتیجه گیری فقیه درست باشه نه اون از ا سراا بودن بین روایت عمل ابان به ثقل جزء بزرگان اصحاب فوق العاده حدیدم خیلی از اصلا قلبم به درد اومد چون زمان ما مصادر بود اما وقتی که امام راضی به اون دیه انگشتان میگه میکان یبل و نا نحن و ها نحن و لا تنبو ان نرجابی شیطان از میگه ای بابا این خطوای اهل بیت را ما چی شی این با بزرگواری عوان تو اونافار نداره که بزرگواری اوناها جای خودش اما اینکه که اینجا اشتباه کردن هم جای خودش اینکه اما دروغ نه. وساقت نه. وساقت نه. چارچوب کلی فکر. آیشون قابل به تکسیمه؟ نه. آیشون قابل به نه. اما خب ایشون یونس نذر الرحمن معیار داشته که یک معیار معین رو قبول میکنه چه قرار معیار اجزا و تا قبول کنه متفکر چه این سوالی می‌کنه یک کلی داره خود ایشون سوال میکنه تجربه های واقعی محبت و این خراب میکنه اصلا این یونس نذر الرحمن سگه تو اه خدا انه ما یعنی سگه تو یاش و هیچ معنا اصلا خواب تصوری بس نیست میگه مقابل فلانی اشتحادش ثابته درسته مثلا یک فقیه باشید که کمی شاز باشه آرای شاز داده شده میگه درا فقیه که فقیه بود آرای شاز داده شده اما فقیه فقیهه و لذا این احتمال من از سویش با خیلی قویه که مورد از اصحاب اجموع هم همین باشه چون عنوان اصحاب اجموع با باب و تصمیت الفقه ها من اصحاب ابی الله خود اقدر بکنید مطلع اصافتا الان تصحیح مایسف و انها اولا اینکه که اموران از این دعبای اجماع چیه؟ بحث مفصل میچینده دیگه از این اختلاف سر این کلمه ای ما موصول است تسیح ما تصحیح مایسف و انها اولا ها یه یه فقیه هست چون مطلع به قیاس خود زرانه مطلع به مسئله تجسیمه از برورده. نه اجازه اینا تصادفاً معظمشون فقاهایی هستن که محضن... مثلا یکیش فتایه یکیش مثلا سوال میکنه اینا تضیح مایه اگر یک مبنای ما در اینجا آیه روایت گرفته به احتمال بسیار قوی مراد خطوات نه روایت چون این گزینه درسته نه نه همین احساسون ها میگه به انتقاد که روز برس. میگه میشه چی فتوا نه مجرد نقل دقیق میکنه مجرد چون در روایت احلاقی تا بود گذینش خونه جشتا بود در این محصول داره باید کنیم گذینش گزینش جشتا ما حق هم ما هم همینه ما چنایی از فتواس یا به اصطلاعیشان گزینش نه نقل نه مجرد نقل و ایلت شاید گفت تصمیمتون که آمنه از خوابه بیردونی گفت تصمیمتون مثل رو از سقاط دست راجب نقمی راجب گذینش و فکر باز به هر حال و انه فلانن حل و سقاطون اولایشون اشون, اشون به همه اشاره بیوزون از که شعن یونوس کسی که نگاه بکنه اصلا اجل به از این کسی که قبر از امام سوال بکنم که یونوس سقاط یعنی راست شاخ ماشین هارو اینا خیلی مستور و پای نمیوردن چون یونس یک شخصیت علمی یک مکتب علمی داره و لذا یونس بن عبدالرحمن تا بود ما حدیث رو قبول کنیم باز داره شواهد کتاب یعنی شواهد مراز روح کلی روح کلی کتاب و سنت درش خاتم باشه خوب دقت این معنای عبارت چیه؟ الان باستن علمان ما گفتن اگه دو سال بعد متعارض باشه موافقت کتاب روز مرجحاته اصلا یونس کاری به مرجحات نداره میگه ما روح کلی کتاب و سنت بودن مقبلن حجیته نه مرجحه این در خواهر همین معنی از توجه نشده سابقه فائد تو تعارض خواهر رو زورده اشونه به شکلی قبول نداریم بعد اگه باشه خارج. بعد از کتاب و سنت از مقلبات بود جدا که وقتی جمله به نظر این مکتب یونسه یعنی حدیث حتی مواعظ گفتن حدیث بلا معارض معارضی نداره اصلا باید نگاه بکنید این حدیث مطابق با روح کتاب و سنت هست بلا معارض کار به تعارض نداری حتی اگه حدیث واحد باشه هم نداره لكن مطابق با روح کتاب و سنت قبولش کنیم این یک مبناه است اصلا خودش مبنای یه علمی است اطلاعیون رسول نعبدالرحمن سه بطر تفکراتش خواب کنم چیزی نیست که بلاخره یکی از تفکرات چیز که فوقها داشتن و علمه علیه السلام اصل تفکر قبول می حالا یک جای ریز کاری های هستی ها اختلاف میشه اون بحث دیگریه و این داره که یه علم بعضی فراج فراجع موام نها تجد شواهد علام مدعیناه که پیدا نکردم ولی مگر مثلا یکی از اشعار قبول نمیشه یکی از که من دیروز عرض کردم که مرحوم نایینی خیلی روش تکیه دارن لیس لعهد من ما قلت لیس اینو ماذون میکردم لا هل من ما عن تشكيك فی ما یردی هندا ثقاته خب ایشون تواصل برام حدیث کردن که اگر چه نه کرد کرد کسی شک نکنه الغا الشک دیروز عرض کردم خب خود اگر بقیه اباظ خونده بودن خب این از امثال ایشان خب با تا اینجای رویت خوندید یه نیم سطح دیگه شم میخوندن الَّذِينُ عُرِفُ بَعَنْنَا لیسه بعد محبالی ناعتشی فیما یرگی هننا سقاطنا الَّذِينِ عُرِفُ بَعَنْنَا نُفاقضه هم سرنا و نحملوه آقا این بحث راویه اگه این زدیششو خونده بوده, بوده. هم <تصفح> این مثلا نسبت تو نبدونم اون سقطون قالو نه این آخو در نماره و دیدونو خودم نمیدونه که مالا دیدونو به نیست میگه سقات ما که الگه اینه قره خوده خوده خوده معروفن که اینا نفاقه دو ما اصرارمونه به اونا میدیم و نحملو ایاهو الیهم توسط اونها مطالب خودونو به شیعه میرسونیم خب این اون عبارتون خوده از با کلاس دیگه واسه <تصفح> به که بایدونه <تصفيق> نه راوی نه که سقه برد امام پیش امام بود امام اینجور فرمون این نیست این محمل و حسران ها نیست که این عبارت نیست من کار این عبارت راجع به ثبات یعنی وساعت دیگه با ببینیم نصف عبارت این شما که عبارت این افعیونوزم نبدانه هم سقتون قاله نه این نیست عبارت افعیونوزم نبدانه هم سقتون آ خدا انه و معالم دینی فقالم یروی ها انا سقاطنا الگین مثلا اصلا داره که اون وخلای ما که معروف هم وکشی ما نیکر که تیرگاه ادعا الگین ارخو به انا نفاق این واقعا وجود خبر خبرواهده حالا چون خود رو ببرمین ولی مرمون آیه وورده همه از از دیگر هم چونکه این سر, سر, سر دیگر خیلی با خاطر نظر شما اصلا این عباراتی که شما بدن حضرت تبرسیه است درمیاد اصلا اینکه میگن گردی اهوا استقالاتا این رو روایت کردن مثلا نه نه یعنی میگن کلام ما رو نقد می‌کنن برایش میگه امام صادقی این دومون این که ما درمی متأخره امام هادی میگوفن چون از زمان امام حادی که تحت هستو قرار گرفتن شیعیان که میونون تا بغداد میومدن به سامرا نمیتونستان برای خدمت امام اون از نظام برکالت خیلی قوی شد مثل حسن مراشد یکی از بزرگان حسابه ابو علی بغدادی این خیلی جایی بغده من چند دفعا رسیمشو بردن بعدم که دستگاه خلاف هست که ایشون رابطه بین شیعه و امام که در سامه راست قربش کردن در با دو نفر بیرد علمان ما هر سر شهید کردن این صحبت اینه لیس اهل شما ما الان در هستی، در هستیم. تحت قصف هستیم محاضره هستیم هفته خانگی میگن چی میگن ما به زیر خودجانه هستیم شما ببینید کسانی که معروفن معروفن اصلا بحث اوره خود توش باید به تمام زرائف کلام تران جوه کرد. کن معروفن اینا نخاوله هم سر رونا ما اسرار رو میگیم و از طریق اونا به شیعه و محمد و یاهو علیه این هر خبر واحدی کجاست چی خبر واحده شما حق ندرید اگه اینا چیزی گفتن اینکه معروفن مثل حسن راشد شما این تا بغداد مثلا سیف الاسلام را بیایید هر حسن راشد گفتو انجام بدید هر حسن راشد گفت انجام بدید کسانی که معروفن شما حق ندرید کلامی که رو نعر میکنن رد بکنید دقت کردید چرا توی وجود خبر واحد کجاش خبر واحد حالا ما خود که خب در خیلال بحثات بودیم کرارا میرانا احترامات واقعا فوق العاده این هم شخصا برای محبون ده این وکه خب این نتیجه چیه تقصیح حدیثه نصفش نرم کنم اون تکیه دومیشه نقل کرده با به در نقصی دوم کاملا مطلب بازه من نمیخواست آماد این بحثشم و منظر یکی واقعا شدیم واقعا این ان میشه انقیامل امارات مقامل قفت باستامه مِمَالَا معنا لَهُ اصلا ایشون میگه این تر معنا نداره قیام قدر اما القصر و طریقی فَا اِنَّ عَمَلَ الْاُغَلَا به طرق المتدابله حال عدم الهر لیس من باب قیام ها مقام الهر این. البسه حالا ایشون همه امارات رو گرفتند این ما واقعا دقیقا نمی مراد جدی ایشون چیه فَا اِنَّ عَمَلَ الْاُغَلَا به طرق المتدابله بعدم حال عدم علم من این بحث رو مستقلن بحث کردیم ایشو ندارم خود در این تحضیح این بحث نمه آمده از ظاهر عبادشه اشتار پهمیده <تصفح> پس کردیم از کسانی که این بحث رو مطرح کردن هم. اولا خود مرحوم آشکیانی در شهر رسائی بود بعد مرحوم آشانسه اسفحانی ایشو رو میدارم و بعدم آقای خویی بیه بیه به یک مناسی خود نیم آقای اون بحث بود که در لسان عدله خودیت امارات عدم علم خوابیده یا نخوابیده بحث تو اصول خوابیده لا ترغضل یقین بشه کل این نقیب حتی تعالی کل این که حلال حتی تعالی آیا تو مثلا افیل و سلو نبدالرحمن سقطو حالو بسه دیر آهوی آخوزا همه آلم زینیه این ده عدم من پیش داره امان فران نه هم این کنت لا تعالی هم تو دلیل امارات خوابیده علو ال العلم سوال من استاد اول فهمید نه اما تمدید لبی داره امارات حجت اگر این نباشه خونده به واسه شونه <تصفيق> بعد فهمید چندین <برمونده. تصفيق> حرف عاشق و عاشانسه مخالف بود گفت نه در دلیلش این مطلب نمیانده و بعد فهمید در آیه مبارکه فصل اهل زکین کنتم لاترمون ترون عکس کردن گذشت ایشان در اینجا خب این خود این مطلبی که ایشون فرمودن عمر قدنا عمل الاغالب طرق المتداول حال عدم خوب خود خود این بحث معنا میکردن که مرال از ضیاء نه حال عدم علمه آیا این تعلیل لو بیس قول مرحوم استاد یا تو ادله وجود داره مثلا فرض این قول قاضی شما در قول قاضی به قاضی مراجعه میکنید آیا این مغایر به که علمه نداشته باشی به قول کبد براجعه می‌کنی مگر که عل نداشته باشی؟ یه زماماری میگه قول ایشون یه حال دکتر، دکتر گفت شما کبدتون ناراحت داره فلان دارو میگه نه، اصلاً شما اشتباه کرده. من یقین دارم کبدم سالمه، فقط معده‌م ناراحت معده‌م. دکتر میگه واش تو یقین دارم کبدت اشتباه کردی. من استادم، من اهل ناراحتی میگه نه، نا قول شما خودت این واقعا اوغلاییه که ایشون آخه من یک مشکلی که ما داریم مثلا کیشون که اعتراض به همهشون کرده که مطلب ایشون اوغلا نیست باز ایشون به ان امر به طرق متداوله حال عدم اله ای آیا واقعا همین همینطوره مثلا بره پیش قاضی بگه قاضی گفت آقا این عوا مال اینه ادعا کرد میگم آقا تو اشتباه کردی من یقین دارم مال خودانه من حرفتو قبول بابا یه قاضی یه من یقین دارم کی کجا یقین او رو حساب میکنه اصل حساب میکنه اگه گفت آب بیار میگه نه من میفهمم مرادش این که قلم بیار مثل ابروان باشه بابا خب اون تو آب بیار آب یعنی آب بیارن بیار. این بیا این زبا من میگه نه من یقین به خلاف دارم خب یقین به خلاف بشه نه نه مراد ایشون چنچ اجل بخو ایشون میگه بان عمل الاغلا ب طرق متداوله حال ال این حال ال علمش کجا اومده حالا اجازه من شو میخوام تحقیق رو بعد از بگم من جواباتی چی میگن قبول دارم بعد از ممکنه اینطور باشه پس اون بگی نه بگی نه من من میگم پاکه خب معلومه به این خدا نمیگنا این باید تحلیل بشه اولا اگر مطلب عقلایی است تبدیل به بشه اگر مطلب تعبدی, تعبدی بشه تبدیل تعبدی بشه به شکلی که بهشم بوارده همه که اگر عقلی اگر اغلاقی نکته داره آیا اصلا بنای و در وقتی دارم میگن قول قاضی معتبره علم شماره در نظر میگیرم که در این در علم معتبره قول اهل خبره که میگن حجته که شما به طبیب مراجعه می‌کنی؟ این در علم مراجعه می‌کنی؟ که اگر طبیب با به آقای این طوری بگی بی خود گفتی من یقین دارم بابا خب من دخترم نگاه که آدم پست کرده میگه نه آقایی مال بوده من من د این قول شما تا وقتی ده ده که من یا موشک خطایی بده مغلظی که نه آقا من علم خلاف دارم اصلا آ این مطلب درسته موافقتتون می‌کنیم همین عباراتی شو می‌خوین از بحث خودمون خارج کلیم مفید بود لیس من باب ها بقامل عز بل من باب انها اوه اهدى الطرق الموسله غالبا الواقع من دون اتفاق الالتنظیم و قیام مقام این ذی هوازی شما مناسب با کاربرد اقتصادیه اگر اتفاد به تنزیر و مقامیناداره چرا این در ادمان علم میفرماییم؟ دیگه احتماله شد مقرر جامعه میکرده احتماله مقرر به لطف کلامویشان نفهمید نرسیده این دوتا عبارت سرن و زیلا خب این مطلب اینشان درست اغلا میان میگن آقا بینا هم طریقه دکتر هم طریقه مثلا طریقیت داره دیگه توش لحاظ نمی کنن علم و عدم علم شما رو اهدت این مطلب را اگر ایشان پرورشی دادن منتقی میشد به کلام مرحوم اصفهانی فردا یک کلام ایشان رسال الله و علا محمد.